امریز تا من در طلب هر روز گامی میزنم دست شفاعت هر زمان در نیک نامی میزنم بی ماه محرف روز خود تا بگذرانم روز خود دامی براهی مینهم مرغی به دامی میزنم او رنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو حال منم در آشقی داو تمامی میزنم تا بو که یا بم آگهی از سر سرو سهی گلوانگ از هر طرف بر خوشخرا میزنم می هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل نقش خیالی میکشم فال دوامی میزنم دانم سرارد قصرا، رنگین برارت قصرا، این آق خونفشان که من هر صبح شامی میزنم. با آن که از وی غایبم و از میچ و حافظ طائبم در مجلس روحانیان گهگاه جامی میزنم.